مشکل آهنگر در زمانهای قدیم آهنگری به نام والوکاگا بود که تو کارش خیلی ماهر بود هر روز عده زیادی بیرون کارگاهش می‌استادن و کار کردن اون رو که برای کشاورزا بیل برای شکارچی یا نیزه و چاقو برای مردها زره و برای زنها گردن بند می‌ساخت و نگاه می گردن. یه روز صبح وقتی والوکاگا تازه میخواست کارش رو شروع کنه و به زغال ها بدمه تا خوب شله بر قاستی از طرف حاکم پیش اون اومد و گفت حاکم دستور دادن تا هر هرچه زودتر به کاخ بیای، چون کار مهمی با تو دارند والوکاگا با شنیدن این حرف با عجله لباس در وورد و بهترین لباسی رو که داشت پوشید. بعد با خوشحالی به طرف کاخه حاکم به راه افتاد. بین راه والوکاگا به تعدادی از دوستانش برخورد و برای همه اونا تعریف کرد که حاکم دنبال اون فرستاده تا براش کار مهمی انجام بده. بعدم از اونا خواست تا براش دعا کند. وقتی والوکاگا به قصر رسید، اونو به اتاقی راهنمایی کردند. مدت زیادی طول کشید تا حاکم آماده پذیرفتن اون شد بعد والوكاگا را به اتاق دیگری بردند اونجا حاکم روی تختی بزرگ که از تنه یه پاچه درختی ساخته شده بود نشسته بود آهنگر جلوی حاکم زانو زد وقتی از جاش بلند شد حاکم به اون گفت شنیدم که ماهرترین آهنگر این سرزمین تو هستی حالا میخوام مهارت تو رو آزمایش کنم. بعد دستاشو به هم زد. بلا فاصله چند خدمتکار چند تکه آهن کج و کله رو او و جلوی پای حاکم گذاشتن. حاکم تکی آهن برداشت و گفت تو باید با این آهنای مرد بسازی. نه یه مرد آهنی. مردی که مثل من و تو زنده باشه حرف به راه بره و تو رگهاش خون جریان داشته باشه. والوکاگا با شنیدن این حرف مات و مبهوت مود. هرچی سعی کرد تا در چهره حاکم اثری از شوخی ببینه چیزی ندید. چهره ی حاکمم خیلی جدی بود. برای همین والوکاگا تصمیم گرفت که به خونه بره بو درباره ی خواسته یه حاکم فکر کنه. اون گفت اطاعت قربان. بعد ترزیمی کرد و از کاخ بیرون اومد. خدمتکارا هم تکه های آهن و برداشتن و به طرف آهنگری بالوکاگا براه افتادن. بالوکاگا دیگه حوصله نداشت که حتی جواب سلام دوستاشو بده. اونا دائم از او می پرسیدن که حاکم چه دستوری داده. وقتی برای همه اونا گفت که حاکم انجام چه کاریو از اون خواسته همه سکوت کردن. چون می دونستن که اگه کسی از دستورات حاکم سرپیچی کنه، مجازاتی جز مرگ در انتظارش نیست. بالوکاگا وقتی حساب می کرد که چند روز دیگه وقت داره، سرشو در دستاش میگرفت و به مغزش فشار می آورد تا شاید راه حلی برای مشکلش پیدا کنه. رفقاشم به اون پیشنهادهی کردن، یکی از دوستاش به اون گفت که از آهن پوستهای ای بسازه و از کسی بخواد که داخل پوسته بره یکی دیگه گفت که بهتره به سرزمین دیگه و جایی که کسی اونو نشناسه فرار کنه حتی به اون پیشنهاد کردن که به آشپز حاکم رشوه بده و از اون بخواد که غذای حاکمو مسموم کنه و اونو بکشه اگه این کارو نکنی خود چند روز دیگه میری اون دنیا آهنگر بیچاره اونقدر فکر کرد که مریض شد دیگه شبا خوابش نمی برد و نمیتونست غذا بخوره. دائم تو بوتزار راه میرفت و بلند بلند با خودش حرف میزد. شب وقتی از بوتزار می میگذشت صدای آواز عجیبی به گوشش خورد وقتی جلوتر رفت دیدی یکی از دوستان زمان کودکیشه. اون دوست حالا یه مرد دیوونه بود که از شهر و دیارش آواره شده بود. مرد دیوونه هم آهنگر و خوب شناخت و گفت درود بر تو والوکاگا چقدر لطف کردی که به من سر زدی. بیا با من شام بخور. مرد دیوونه ظاهر بیآزاری داشت. والوکاگا هم کار دیگه ای نداشت که انجام بده. برای همین کنار اون روی سنگین نشست و با اون دانه‌های وحشی و اصل خورد. والوکاگا متوجه شد که این اولین قضاییه که بعد موتتها خورده. احساس کرد کمی حالش بهتره. دلش خواست کمی دوستش رو بخندونه. ماجرایی رو که در کاخ پیش اومده بود برای اون تعریف کرد. اما با تعجب دید که دوستش ساکت و آروم حرفای اون رو گوش میکنه. والوکاگا پرسید حالا که داستان منو شنیدی، بگو اگه جایی من بودی چیکار کار می کردی؟ اگه بتونی جواب درستی به من بدی، بهترین دوستم هستی. چون هیچ کس نتونست راه حلی برای مشکل من پیدا کنه. مرد دیوونه بدون اینکه فکر کنه جواب داد، راه حلش آسونه. پیش حاکم برو بگو فقط در صورتی می تونم خواستتو برابرده کنم که تو زغالی مخصوص از موی سر اطرافیان تهیه کنی. زغالی به اندازه ی هزار کوله بار. بعدم به اون بگو صد گوزه که از عشق اطرافیان تو پر شده باشه لازم دارم. بگو بدون تهیه این دو چیز نمیتونم کار ساخت مرد آهنی رو شروع کنم. مرد دیوونه بعد از گفتن این حرفها قهقهی بلندی سرداد و به حرفای خودش خندید. در حالی که آهنگر نمیدونست چطور از اون تشکر کنه. آهنگر وقت و تلف نکرد با عجله به طرف کاخ حاکم راه افتاد وقتی به اونجا رسید در مقابل حاکم تعظیمی کرد و گفت قبل از ساختن مرد آهنی باید چیزهایی که لازم دارم آماده بشه حاکم موافقت کرد و فردا صبح قاصدی پیش تمام نزدیکانش فرستاد و از اونا خواست تا موی سرشون رو برای تهیه ذغال بتراشند بعدم تا میتونن گریه کنن و عشقشونو توی کوزه بریزن. اطرافیان از خواسته حاکم تعجب کرده بودند اما جورت سرپیچی از دستور اونو نداشتن. با این حال نتونستند بیشتر از دو ظرف عشق و یک کل بار مو جمع کنند حاکم با دیدن اشکا و موهای جمع شده گفت اینطور که معلومه ما هیچوقت نمیتونیم زغال و آبی را که والوکاگا از ما خواسته فراهم کنید. برید و اونو نزد ما بیارید. والوکاگا با پاهای لرزان نزد حاکم رفت. اما وقتی اثری از خشم تو چهرش ندید کمی آروم گرفت. حاکم گفت والوکاگا تو از ما چیزی خواستی که تحیه اون غیر ممکنه. من فکر نمی که اطرافیان من بتونن هزار کوله بار زغال از موهاشون و صد کوز از عشقاشونو بر یک کارتو تهیه کنن. پس تو رو از انجام کار معاف می کنم. والوکاگا گفت از شما ممنونم چون چیزی هم که شما از من خواسته بودید غیر ممکن بود. من هیچ وقت نمیتونستم با آهن مردی زنده بسازم. همه ی حاضران خندیدن و به هوش او آفرین گفتند. والوکاگا دوباره به کار آهنگریش مشغول شد. اما هیچ وقت فراموش نکرد که دوست دیبونش، اونو از خطر مرگی نجات داده از اون زمان به بعد آهنگر دیگه نزاش که دوستش گرست نبو تشنبو تنها بمونه سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها ماشره از جادوگر ها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 کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های افسان صوتی.